خب بسم الله الرحمن الرحیم ما رسیده بودیم به ترتیب مقاصد شرعی و بله ترتیب مقاصد شرعی رو خونده بودیم و احکامی که متعلق به این بودن که ابتدا گفت ضروریات بعدش حاجیات و بعدش تحسینیات و بنا بر قاعده یک سری مبانی و مبادع شرعی وضع شدهاند که مختص به دو امراد یک دفع زرار و دفع حرج دفع زرار و دفع حرج امروز ما اون قوایدی رو که مربوط به دفع زرر هستند انشاءالله مختصرا طبق در دروس قبلی میخونیم وضع الفقهاء قواعد كلية مهمة جدا في استنباط الأحكام متفرعة عن مبدئ دفع الضرر واز أكار ديان فقهاء قوائد مهم بسيار مهمة كليرة در رابط با استنباط كي شاخ شاخ مشان أز مبنى دفع زرار وهي في الحقيقة متفرعة عن القائدة التالية ودر حقيقة شوبي شوبي شو دان جدا شو از ان قائده يزير لا ضرر ولا ضرر ينون قائده كما انا رمي خلين از ان قائده لا ضرر ولا ضرار. شوه, شوه شوه شده اند شاخ شاخ شده اند لا و اولا توضیح ایده ما در خیلی از جاهای کتاب اگر ذهن مبارکتون باشی اینجوری ترجمه می کردیم که هیچ نوع ضرری وجود نداره جایز نیست یعنی لابداره را و لابداره چون ضرر یک نوع ضرری رو می دم ضرری دیگر رو کلان توضیحش میده میگه از ضرر الحاق و مفسدتن بالآخری لا لا نافی جنسی منظور از zarar رساندن به دیگران پس ذرر رساندن به دیگران جایز نیست وجود نداره و وال و الضرر مالش اسم مقابله بالضرر مقابله کردن ذرر در مقابل ذرر، الزرار. تو ضرری رو با ضرری پاسخ بده. و هذه القاعده نص حدیث نبوی صحيح. إن قاعدة نص حديث نبوي صحيح يعني لا ضرر ولا ضراة. كنتوا حديث وما ددج. ابتداء ترى كتابك مخولين أربعين نبويه إنه هم يارين. وهي من أركان الشريعة وأز أركان الشريعة تصد. ومن أهم أحكامها المتفرعة عنها وأز مهم ترى أحكامك أز إين قائده متفرع میشان فرفر میشان جدا مشان جواز رجوع المستار الى دفع الدين ان غيره بلا اذنه على المدين بما دفعه ان ذمته من ان عن نفسه اذا لم يكن الدافع متبرعا از جمله احکامی که از این لا و لادره را میشند شاخه شاخه میشند جدا میشند جایز بودن رجوع شخصی که مجبور شده است دفعه کند جا به جای کسی دیگر دفعه دیم کند چی؟ به جای کسی دیگر بدون اجازه اش رجوع کند بر علال المدین مدین همون کسی رو میگند که وام برشه وام برشه بما دفعه ذمته رجوع کند آنچرا که داده اش شخص فرداخته از شخص مستر از ذمه مدین جای ذمه که مدین من ان لب ان نفسه تا ضرر یک به خودش برسه ازش پرهیز بشه تا ضرر به خود شخص شخصی که پرداخت کرده به خودش وارد نشه ضرر دیگه اذا یکون داخع الدافع متبرعا ولی چه زمان جائزه که رجوع کنه زمانی که وام شخص دیگر رو پرداخت کرده متبرع نباشه یعنی اونو از روی تبرع نداده باشه چون اگر داده باشه دیگه الان اجازه نداره که بره بر بگرده الان اجازه نداره که بر چکار کنه بر بگرده اما اگر به خاطر مصلحت دیگه‌ای درش بوده که اینا رو رفته پرداختش کرده رفته چیکارش کرده الان به خاطر که ضرر به خودش نرسه جائز است که رجوع کنه جائز است که چیکار کنه؟ رجوع کنه من ان داراری ان نفسه تو وامی رو به جای این ماموسا رفتیدادی. اگر کاملا از روی اختیار بوده بدون اجازش رفتی دادی. بدون اجازش اون وقت تو متوره حساب میشه ولی اگر مسلحت ای درش بوده جبری فلانی مسلحتی تو مجبور شدی این پرداخت کردی الان میتونی بری بر بگردی از این چیه پرداخت دی. بلی همینو بیکن جار بله باشه شد. وجواز حبس المشهورين بالدعاره والفساد حتی تظهر توبتهم ولو لم يثبت عليهم جرم معين بطریق قضائی وجائز بودن زندانی کردن اونایی که در روسپیگری فساد مشهورند تا زمانی که توبه آنها علنی بشه ظاهر بشه اگر هم جرم خاصی از طریق قضایی براشون ثابت نشده باشه اونایی که فاحشگی دارند مشهوراً به روس و فساد جائز است که حبس بشند اگر هم از طریق قضایی جرمی معین براشون ثابت نشده باشه و احترام الحقوق القديمتی من منافع و مرافق و تصرفات ولو لم يكن في ايدي اصحابها وثائق وثائق مثبته احترام حقوق قبلي قديمي از جمل منافع مرافق مرافق همون هم منافع در فارسی ترجمهش میکنن وتصرفات دیگر اگرچه هم که اون سندهایی که ثابت بکنن در دستشون نباشه حقوقی رو که از قبل طرف داشته است منافعی باشه مرافقی باشه یا تصرفی باشه مال شخص باشه محفوظ هست چه هست؟ محفوظ هست اگرچه که هم مدرکی در دست نداشته باشه و, و فسخ اجاره به سبب على عیب قدیم مباح بودن فسخ کردن اجاره به سبب مطلع شدن بر عیبی که قبلا در درون چیز وجود داشته است شخص میاد چیز چیزی رو اجاره میکنه بعدش مطلع میشه که این چه داره یک داره ورد رد المعجور المشتره على صاحبه ازالة للضرر عن و بر بگرداند اون چیز رو که اجارش کرده است تو خریده است بر صاحبش تاز زرر از خودش چه بشه؟ دور بشه لانه الاجارت تفسخ بالاعذار چون اجاره با عذرها فسخ میشه اجاره کردن با اوزرها چی میشه؟ خون این چیزی رو قدیم مثلا طرف میومد اجارهش میکرد چی میکرد؟ بعدا متوجه میشد که درین عیبی از قبل وجود داره عیبی قدیمی آره فسخ اجاره جایز بود و یتفرعو ان هذه ذه القاعده تمایلی. از این قاعده یعنی لا ضرار ولا ضرار قواعد زیر شبه شبه مشان فرع فرع مشان يك الضرر يدفعو بقدر, بقدر الامكان ضرر بقدر امكان دفع مشه دور مشه يجب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل الممكنة املا بالمصلحة المرسلة يعني واجب است دفع الضرر بشه قبل زين الضرر واقع بشه بهر وسيله يك ممكن است باتجو بعمل کردنه بمصلحة المرسلة قایش الجهاد لدفع شر الادا پس در نتیجه جهاد مشروع میشه به خاطر دفع کردن که؟ شر دشمن و تجبه الاقوبات لقم الاجرام و صول الامن الداخلی اقوبت واجب میگرده تا جرم ها از بین برده شوند وأمنيات داخل محفوظ بمانه ويجب سد الذرائع الى الفساد وواجب اس سد ذرائع بشه اس فساد كارك السبب الفساد مش سد ذرائع بشه ويشرع حق الشفعة لدفع الضرر عن الشريك والجار مشروع مش حق شفعة برای دفع ضرر از شریک و از همسایه البته در مورد همسایه بودن اختلافی است تمام فقها حق شفعه درش منجرا میگه به خاطر که به شریک ضرری فردا روز نرسه حق شفعه اومده چی اومده یعنی اگه قرار باشه طرف سهامش به بکنه باید به شریک بده نه به کسی جدیدی که فاردار عذبه الحجر على السفيه دفع الضرر عن نفسه حجر بر مياد تا ازو چه بشه دفع ضرر بشه وعن المفلسي لدفع الضرر عن الدائنين والمفلس حجر ميشه ممنوع التصرف تا داده اند نرسه تا وام دهنده ها چه بشه؟ دفع ضرر بشه دائن این کسی که دین داده جمع دا مذکر دائنی و تثبط الخیارات فی العقود لدفع الضرر قبل حدوثه و ثابت از خیارات در قراردادها تا ضرر قبل از حادث شدن دفع بشه چرا طرف اختیار داده شده؟ تا اینکه که ضرری بش نرس تا از ضررات جلوگیری بشه که خیار شرط مانند خیار شرط میگه شرط میگذاره یه چیزی رو میفروشه خ... می و فروشنده یا آخریدار به خاطر که ضرری نباشه شرط میگذاره مانند خر... خیار شرط خیار شرط تو دیگه بله دید رسال نه شما یه چیزی رو میفروشی و یه شرطی هم روش؟ میگذاری؟ آقا تا دو روز من اختیار دارم و رویا خیار رویا هنو چیزو ندیده میگه دیدمش بعد از اون ممکنه من چکار کنم بر بگردم و تعین خیار تعین خیار تعین هم در کتب فقهی اومده من میدونم شما این اصطلاحو رو نخوندید یعنی چند چیزو رو ولی تعیین نشده وز تعیین در کتاب او ظعالی فقه اسلامیش اینا توضیح مفصل داده و بر شریک على قسمتی دممت شریک مجبور میشه تقسیم بکنه زمانی که امتنا کرد. اینا همشون اومده بودن خاطر که زرر به اندازه امکان با بشه؟, بشه؟ دو از این قاعده هم از اون قاعده قبلی لا ضرر و متفرع شده ایجی رفع ضرر و ترمیم بعد الوقوع ایت یعنی واجب است که رفع ضرر بشه آثار اون ضرر ترمیم بشن بعد از وقوع پس اگر ضرر اومد و واقع شد واجبه که دفع بشه و آثارش هم مرمت بشن ترمین بشه, بشه فتو کل انواع تعدی الالطریک پس در نتیجه هر نوع تعدی از راه برداشته میشه از بین میده ببنائن او میزابن و غیره چه بنایی باشه چه میزاب توی راه کرده باشه و چیزای دیگه پس هر نوع تعدیک در راه بشه اون zarar چی میشه از بین میره و توقته و اغصان الشجره المتذليه علی دار جاری حتی برگ درختای که رفتن تو خونه همسایه‌چی میشن قطع میشن و یزمن و یزمن المطلف ای ما اطلفه علی غیره و میشه تلف کننده عوض آن چیزی را که تلفش کرده از شخصی دیگر زامن هست عوضش رو بده و توش را اطاقیفتون من الخیارات فی العقود لیزالت بعد وقوعه مشروع شده بعضی از اختیارات در قراردادها تا ضرر بعد از وقوعش از بین بره که خیار العیب مانند خیار عیب تو چیزو خریدی بعدا متوجه شدی که این چی هست؟ ابدار بوده و خیار, ما تغرید. خیار الغبر غری خیار با تریض آ تو رو یک بازی فاحشی دادند طرف از قیمت ها خبر نداشته اومدن پسو چیکارش کردند؟ مخشو زدن و خیار تفریق صفقه خیار تفریق صفقه این شرط تفریق صفقه بین گونه هست این هم تو کتاب اومده طرف میاد یه چیزی رو که جایزه همراه با چیز دیگه که جایز نیست با هم میکنه می فروشه مثلا که مثلا یک شیشه شراب با یک شیشه مثلا سرکه یکیش جایزه و دیگری جایز این میگن تفریق صفقه بس صفقه که همون معامله رو میگند صفقه این دست زدن رو در اصل میگند قدیمه عرف بود خاطر این بهش صفقه خوب و یجب تداوی من الامراض واجب است تداوی الامراس و یقتل و يقتل الدار من الحیوانات کشته میشه اون حیوانی که دهنده هست از لا به بمثله ضرر با ضرر دفع نمیشه از بین برده نمیشه به مانند خودش ایلا یجوز و الضرر درار به احداس درارم مثله یعنی جایز نیست از بین بردن ضرر، با درست کردن زراری مانند خودش فلا یجوز اغراق و عرض غیری الغرق دفع ان ارده بس جایز نیست که انسان بیاد زمین کسی دیگه رو غرق بکنه تا زمین خود چکار بکنه نجاب بده ولا اطلافه مالي غيره لحفظ ماله وجالزني استرف بيد مال شخصي دي تلاف كنه تا مال خدس وشكار كنه محفوظ كنه ولا انقاذ نفسه بتناول تعامي مستر آخر أو محتاج مثله، مثله مثله و جائز نیست نجات داده شخص خودش را با خوردن غذا شخصی مستر یا محتاجی مانند خودش با, با یکی داره هم بدبخت از گشنگی میمیره تو هم میمیری خب بگذار تو بمیرو خب اون, اون هم مثل تو اگه تو, تو بخوری پس اون بدبخت تباه میشه نه؟ ولا فرض ولا ل ی مصدر ولا فرض النفقة لفقر لقریب فقیر مثله بله میگه نفقه فرض نیست بر فقیر برای فقیر دیگای که مانند خودشه و از نزدیکانشه خب این خودش مثل اونه این خودش ولا اجبار شریک على قسمت المال المشترک غیر القابل للقسمتی و شریک مجبور نمیشه که مال مشترک رو تقسیم بکنه اون مالی رو که قابل تقسیم نیست مثل این سخف قابل تقسیم نیست بیاد قراب میشه، چه چی میشه؟ خلاصه هر ملک قابل تقسیم نیست شریک مجبور نمیشه بر تقسیمشون با... چون زرارش چون اگر برا اون شریکی که طلب تقسیم کرده زرر وجود داره برا این هم چه وجود داره؟ ضرر زرار با زراری مثل خودش دفع نمیشه ولا رد الم... مبیع المعید با ایب قدیم اذا حدث ایب جدید عند المشتري و کالایی که مبی همون فروخته شده رو میگن مئید یعنی عیب دار. و کالایی که عیب داره ولی عیب قدیمی برگردانده نمیشه زمانی که عیبی جدید در نزد مشتری چه شده؟ حادث شده حالا یک عیب قدیمی قبلا داشته یک عیبی هم نزد مشتری اینجا اگر برش گردونند همانطوری که با این عیبه همانطور که زرار برای این مشتری جدید داره برای مشتری قبلی هم دارده چون اینجا دیگه براش پیدا شده پس اینجا میگن چیکار میکنن بعضی از میگن بل یلزم البایعو به تعویز المشتری انوی القدیم فروشنده الزام میشه که اون عیب قدیم رو باید چیکار کنه بپردازه اون عیب قدیم رو تکار کنه باید تعویزیشو بده چار الضرر الأشد يزال بالضرر الأخفي. ضرر شديدات شديدتر بضرر خفيفتر. أذن برد مشي. فتفرز النفقة للفقراء على الأغنياء الأقارب. فسفر مش النفقة براء فقران بفولداران عزيك. ويتملك مشتر الأرض بقيمتها جبرا أن مستحقها إذا بنا بیها او غرسا و کانت قیمت البنای اکثر مشتری زمین مشتری زمین رو مالک میشه با قیمتش زمانی که در اون خونه ای درست کرد یا چیزی رو کاشت که قیمت اون خونه از قیمت این زمین چه باشه بیشتر باشه اینجا ما میگیم آقا تو زمین طرف رو نمیدی توش ذره هست ولی اگر اون طرف هم بیاد زمین رو ببره خب این بردبخ ضررش بیشتر میشه چون اون چیزی که الان در زمین درست شده قیمتش از خود زمین چیه؟ بیشتره گرچه این مساله که میاره چی هستن؟ اختلافی هستن احناف واقعا یعنی در فقه قدیمشون فقه های قدیم شده میگم منظورم این معاصرینی که خب تو منطقه ما هستن من نمیگم حالا این حرف من اینا رو نفی نمیکنه ولی منظور اینه که پقه قدیم تدیبه عمیق امیغ بودن واقعا بچه ها قبول کنیدان درسته این انسان گاهی موقع مثلا انصاف نداشته باشه یا امیغ بررسی نکنه یا با اصول آشنایی نداشته باشه و بررسی کنه حد میزنه که اینا نظریات شد همجوری هوایی بوده عقلگرایانه بوده ولی نه اینا اون بر اساس قواعد فقهی من جمله من دفع ضرر و این چیزا میاد یک سری نظریاتی رو دادن به خاطر این بوده که در طول تاریخ اونایی که با فقه آشنایی مطلق خوبی داشتن فقه های فقهای رو زیر سوال نبردن شده است که یک نظری رو بگن این نظر مرجوع ما نمیپذیریم خب این منهج اهل سنت در طول تاریخ بوده که هر کجا نظری مرجو باشه اونو نمیپذیره ولی اینی که این روشی که جدیدن اومده که فقها رو زیر سوال میبرند خارج از نمیدونن نمی و سنت این قبول کنید مال اصریه که تلوهاش سیاد با اصول سرکار ندارن با علم سرکار ندارن فقط اگر دیدن همونجور ظاهری ظاهری ببین دیدن این فتوه مثلا با این حدیث در ظاهران نکه امیقان از دید اون در تزاده فورا و متهم میکنه که پس او این برخلاف کجا الله رسول الگری گفته خب بریم در در جا في معنى هذه القائده و دو قاعده دیگه در معنا این, معن این قاعده وجود داره و اونا اینانن یختاروا احمل الشرین سبکترین شر برگزیده میشه یعنی اگر دو تا شر بودن اون شری شر که سبکتر باشه چی میشه برگزیده میشه دیگه در معنای چیه در معنای از ضرر الاشد یوزال به باراری الاخف یه قاعده در اون معنا بود و قاعده دیگر يرتكب أخفو الضررين لاتقايا شدهما شما إن دو كتاب الأشباه والنظائر كمال سيوتية كمال أبو نوجيم ها فكنا بالا كمال شوافية كمال حنافية إنار بخونت قواعد خير الزادل ووجد قواعد فيقير توزمو سليم دولت بالا ويرتكب اخف الضررين التقاي اشدهما از میان دو ضرر سبقت ارتکاب میشه تا شدیدترینشو چی بشه ازش پرهیز بشه و سکوت سكوت عن انكار المنكرات اذا ترتب على انكارها ضرر اعظم پس در نتیجه جایز سکوت کردن از انکار منکرات زمانی که در انکار منکر ضرری بزرگتر وجود بزرگ داشته باشه مثلا منکر تو می‌بینی، در یه سطحیه ولی اگه تو بری که جلاشو بگیری زرری بزرگتر بیاد دیگه سکوت و یباح و شق بطن بخون المرعت لاخراج لی الجنین اذا كانت ترج حیاتو مباح میشه پارا کردن شکم زن مرده برای خارج کردن جنین زمانی که این امید وجود داشته باشه که اون جنین هنوز زنده و مادر مرده و یوحبس و زوج ازا ما طالفی عدائی نفقه زوجته زندان برده میشه شوهر زمانی که در ادای نفقه زنش دست نگه داشت تأخیر کرد ما الغني يضل منايم ماتل بس وكذلك يحبس القريب إذا اتنا عن على قريبه. هم تنين حبس مشاوى قريب زمانكه والنذديك شرو نفقنا دات. إن داره قن بعد بخنا داره. وتطلق وتطلق الزوجتو لبرری والاحصار طلاق داده دا بشه زوجه زمان که زرر و سختی و تنگی برش بیاد و يوصل للانسان و كيف ما تیسر اذا عجز عن التطهر او سفر العورتی او استقبال القبله ونماز نماز و انسان نواز میخاند به هر گونه که براش میسر شد زمانی که عاجز شد است حاصل کردن پاکی یا ستر عورت یا رو به قبلة پنج فإن الضرر الخاص لدفع الضرر العام حمل میشه ضرر خاص برای دفع کردن ضرر زرار عمومی یه ضرری عام بودی که خاص اونی که خاصی میشه انجام میگیره حمل میشه فيحجر على الطبيب الجاهل بر اساس این قاعده است که محجور میشه حجر میشه طبیب پزشکی که سواد نداره پزشکی که پزشکی بلد نیست الان قدیما در دنیای قدیم مدرک نبود راحت میتونست میتونستی ادعا کنن ولی الان که هم مدرک شد مدرک گره شده خیلی از کشورا میبینی طرف پولکی مدرک پزشکی رو گرفته ولی بلد نیست ولی بلد پس هاي حي حجر مش التبی جاهل والمفتي ماجن مفتی ماجن مفتی که پایبند شریعت نیست مفتی که مردوم و هیل شرعی میآموزونه شرایط مفتی مقبول رو نداره والمکاری المفلس اون یکی که کار مردومو به کرایه انجام میده و مفلسه مفلس شده کارشونو به خوبی نمیتونه انجام بده ضررش متحمل افراد دیگر میشه دفعا لقدارنی عن الجماعه تون زرر از جماعت دفع بشه اولی جان مردم رو میگیرد دومی دین مردم را و سومی مال مردم را و انتظار رو رو هم اگرچه خود اینا این افرادی که نامبرد شد زرر ببینند چون زررین خاصه ولی مال چیه؟ عام و تباو اموال المحتکرین و این دفعا هم لیل ضرر احتکاری الناس اموال احتکار کنندگان فروخته میشه. اگر چی این کار به اونا زرری بده تا زرر احتکار از مردم چی دفع بشه <تصفيق> عوامي می واردن بله احتکار این انغواض مثلا خیلی از مردم احتکار میکنن ها تو اینی که دو سال که تورم خیلی رفت بالا ناگهانی چیزا شده 3 4 برابر خیلی احتکار میکردن بعضی متاسفانه و يجوز التسعير عند التغالي الاسعار جایز میشه قیمت گذاری هنگامی که قیمت ها درون میشن اصل برای اینه که حکومت قیمت نمیکنه نمی کنه ولی مصنید. یعنی الهاز شرعی من دارن حرف دارن حالا اگر مسلحتی باشه که حکومت ها بکنن هیچ مشکلی؟ نداره ولی موقعی که پیغمبر اومدن گفتن قیمت گذاری بکن با توجه به مسلحتی قیمت گذاری نکرد ولی میگه هنگامی که گرونی در قیمت ها بیاد باعلن. و تو هدم دور و الملاسقت و للحریق خونه هایی که چسبیده به آتش هستند خراب کرده میشن تا آتش نره جلو تجاوز نکنه او زمان قدیم مثلا این خونه های پیشی بود آتش که از اونجا شروع میشد اگر وسط چند تا خونه رو خراب میکردن برمیداشتن این بخیر گرهیم سمت چی؟ آتش نمیگره میگه جایزه که در این وسط چند تا خونه رو خراب. ويهدم الجدار المائل ويهدم الجدار المائل للسقوط في الطريق الان دیواری که داره میفته مائل به شدنه در راه عمومی میگه این از بین برده میشه دیواری که مائل هست برای سقوط در راه عمومی خراب کرده میشه ويباع مال المدین جبرا عنه لصداد ديونه مال مدین اونی که وام برش هست فروخته میشه تا دیولش پرداخته میشه و یمنوی اتخاب الافران و الحداده بین تجار الاغمشه من میشه تنور گرفتن حدادی حد کردن بین تاجران پارچه و بابا پارچه ها اینا آتیش میگیره می, می خراب میشه الان هم اتفاقا حکومت ها مثلا جوشکارا رو بردن یک گوشه خب ف... الان درست مثل قدیم احتمال آتش سوزی نیست ولی ما اگر قدیم زراره جدید اومده مثلا آلودگی سوتی آلودگی صوتی الان یه سری دستگاه های هست همسایه خواب نمیره بچهش عذیت میشه آه؟ یا درست آت... درست... یا خلاص نم مثالی زدم مستن. ضرر از هر پریده بیاد میشه خلاصه کرگاه رو میبرن یه گوشه بازار شمتشنه. بعضی مثلا منطق ندارن آقا چیم چی وزی... بابا خر... زندگی اجتماعی سری حقوقی دارن ملتا واقعا فقها ها چقدر خدا اونارو رو جزای خیر بده دوراندیش بودن ولی امروز تو میخوای بیای, بیای, بیای فتوهای بیدی که دفع ضرر بکنی اگه سریع برای همون حادثه به اینهی اسمش تو حدیث نمومده باشی میگی خوب بیه سابتش کن مگی تو یک کمی بابا برو رو قوائد کلی شریعت آیا زیر قوائد قرار میگیره یا قرار؟ نمیگیره شیش در المفاصلی اولا من جلب المنافع دفع مفسده اولاتر از جلب منفعت هست اولا اینه که تو زرر و مفسده رو دفع کنی لی قولی صلی الله علیه سلام ما نهیت آنچرا که من شما رو از اون نهی کردم اجتناب کنید از اون و ما امرتکن بهی فقط اومد و مستطعتون و آن به شما دستور دادن اونو انجام بدید به اندازه توانایتون. چقدر جالب چقدر اینا عمیق بودن از این حدیث چه استنباط قشنگی کردن در مورد نه گفته فجتنی بود مستطعتون رو نه آورده. ولی در مورد امر آورده یعنی چی؟ یعنی آقا دفع مفسده در مفسده اولاتر از زل بشیه منفعات هست خبیلاتر گریم چی مسئله رو خب بگیم جلوتر فتمن الخمارات و نحوها و نحوها ولو کان فيها ارباح و اقتصادی آقا خمارها ممنوع بیشند خمار خمارات به معنی جایی که شراب می خود خمار من معنی شراب فروش خماره یعنی مکان شراب من میشند خمارات و امثالشون اگرچه در اونها ربح های اقتصادی میشه. یکی منفعت است دیگری مذرت کدوم اولاتره؟ مذارت ولی درش مذارت و یمن و مال کدر من فتح نافذتن على مقر میسا اجاره. مالک خونه ممنوع می‌شذین که پنجرهشو تو خونه بغل همسای، همسایش باز کنه که اونجا زنان نشسن اینا رو نگاه کنه و به قالیکا هم نمیشه که هر لحظه بدبخت این پنجرهشو اونجا باز نکنه اون طرف بازش کنه البته الان دیگه عرفا بگونه گونه‌ای شده معمولا تغییراتی اومده ولی خب در کل یعنی این مثالیه که یعنی میشه از این مثال مثاله معاصر رو بره این حالی تو شهر که امکان نداری یه خونه ای مثلا پنجاه تا طبقه هست و یکی اینجا پایی مسلم اون بالای این پایینی رو میبینن بعد این خودش مراحت کنه الان دیگه دنیا عوض شده دوروین مخفی است باید خودش هجاب خود شراحت کنه اونی که بلدش. احل هجابه دیندارا نه اون چیزی که پوشیدنش شرعن سو اومده اون رو بپوش خودش منظور ما این نیست که صورت بره بگیره چون صورت گرفتن نه اولا مسئله اختلافیه دوما من واقعا قول اونایی که صورتو واجب نمیدونن در حالا یکی میره میپوشنه به ما ربطی نداره من نه این کاف و که ولی منظور اون حکمیه که انسان به اون نتیجه میرسه بابا ما مصطفا شما هر مذریه دارید نظریه شما محفوظ سنجاش بمانه محترمه وكذلك يمنع المالك من التصرف في ملكه تصرفاً باراً بجيرانه هم كنين ما امنومشه مالك التصرف كادن در ملكش در دارايش زمانك ونتصرف ضرري درشباشك هم بحب صحيح الضرار درسه كاتخاذ معصره معصره او فرن يؤذيان الجيران بالرائحة او الدخان ما نندي معصره قريفتان معصره میگن وسیله است که بزش روغن میگرفتن میگرف فرن هم که تنوره چون اذیت میشن همسایه ها با دود و بو با دود و ویکره بو و ف رهو والاستنشاق مکروه است برای روزدار مبالغه کردن در مزمزه کردن استنشاق کردن چون مزمزه استنشاق میگه باید داره ولی روز باطل نشه خاص اضطرارات تبیه المحظورات قاعده ای بعد از ضرورت مباح میکنن چیزای حرام رو لایات خمس في القران پنج آیه در مورد در قرآن اومده به دلیل پنج آیه که در قرآن اومده از جمله فمن استور فی مقاصدتن غیر متجانف لئس فان الله غفور رحیم هرکس ناچار شد در مخمسه افتاده بود مایل به گناه نبود همان الله متعاله غفور رحیم است فلا اسم على مسترخی مجعتن اذا تناول شئن من میت، او دم او شراب محرمه گناهی نیست بر ناچاری که در گشتی افتاده است زمانی که چیزی حرام میخورد از جمله مردار یا خون یا شراب حرام نوشیدنی حرام ولا حرج على المدافع عن نفسه من احراق الضرر بغیره حرج نیست بر کسی که دفاع میکند از خودش در این دفاع از خودش به شخصی دیگه چه برسه ضرری برسه بر این شخص حرجی نیست و يؤخذ الدين من مال المدین الممتنع عن اداء دینی بغیر اذنه برداشته میشه گرفته میشه دین از مال اون کسی که دین برشه و ده بدون اجازهش بدون اجازهش و کشف الطبیب على عورات الاشخاص اذا توقفت عليها مداواتهم جائزه طبیب عورات اشخاص ظاهر کنه زمانی که مداوای اون اشخاص متوقفه بر ظاهر کردن عورت بودن هشت از ضرورات تقدرو بقدرها ضرورات به اندازهشون اهمیت داده میشن ارزش گذاری میشن بهمون اندازه فقط اون کار انجام داده میشه ولیس للمفطر این یتناول من المحرم الا قدر ما یصد الرمق ها جایز نیست برای مستر برای شخص ناچار برای شخص مجبور که از حرام بخوره مگر به اندازه صد رمقش ولا یوفا من النجاسة الا القدر الذي یشق الاحتراز عنه و از نجاست اخو نمیشه مگر همون ای که پرهیز از اون سخت هست و على و يجوز یجوزو للطبیب بمقدار ما يحتاج الى كشفه فقط و کشف کردن عورتها برای طبیب باندازه نیازی که باید کشف بشه فقط جائزه ولا یجوز للمرأت المعالجة، اند الطبيب اذا وجدت امراه تحسن ذلك لان الاطلاع الجنسي على جنس اخف خطرا و اقل ضررا جائز و جائز نیست برای زن معالجه کردن نزد پزشک مرد زمانی که زنی یافت شد که اون معالجه رو به خوبی بلد است زیرا مطلع شدن جنس بر جنس خودش یعنی مرد بر مرد و زن بر زن خطرش کمتر و زررش کمتر است و تو بتلو رخص و ایدازالت اسبابوها رخصت ها هم باطل میشن زمانی که اون سببی که سبب رخصت شده است اون سبب از بین رفته باشه که وجود مایل المتیمم مانند وجود آب برای متیمم سببی که شخص تونست تیمم کنه نبود آب بود الان اون سبب از بین رفت وإقامة المصافر في رمضان ومقيم شدن المصافر در رمضان هل أنت تقول السبب كمصافر مخور دازبين نه الاسترار لا يبطل حق الغير. استرار حق ديجاران رباطل نمي كنت فمن اضطر لدفع الهلاك عن نفسه أن يأكل طعام غيره وعليه ضمان وقيمته هر كسي مجبور شد تا حلاکت رو از خودش دفع کند که از خوراک شخصی دیگر بخورد میتونه بخوره ولی این حق اون طرف از بین نرفته و عليه ضمان و قیمته بلکه بر اون شخص مستر هست که قیمتش رو زامن بشه ومن من اکره الا اطلاف مال غیری فالا المكره ضمان و قیمته المال لانه المتسبب و هر کسی مجبور شد مال دیگری را تلف کند پس بر اجبار کننده هست زمانت قیمت مال زیرا که او سبب شده است و بعضی از فقه ها گفتند تفصیل قاعد شده که تو این کتاب رد شد خب تا اینجا کار کافی واقعا امروز کار ما هشت فقط چی خوندیم؟ قاعد خوندیم به این چلو پنج دقیقتون کشید